جاریات کی جلد دوم فصل هشتم اک آموزش های مقدس. هاد ترین مسئله ای که انسان بایستی آن را حل نماید و نیروی محرک او در وادی طلب نیز به حساب می خود آگاهی است. اولین کشف او یافتن عظمت جایگاهش در کل هستی است. با اون هست که می تواند قدم در طریق معرفت گذارد آگاهی روح والاترین تجربه در اکنکار است که فرد را به درونیترین لایه هستیت خیش وارد میسازد. و با این تجربه آگاهیش بر کل کیهان اروج می نماید بنابراین انسان با دیدگاه عمومی خود قادر به ادراک کل نیست او خودش معلول آن کلیت است. پس کل را نمی حال حالان که او در شکل‌گیری این کیهان مشارکت کرده و همکنون نیز این همکاری را ادامه میدهد. او همچون با دیگر یک نمایش نقشی در آن میافتینند. نقش های گوناگونی که به فراخور زندگی درونی خود گیفا می کند و این نقش ها تمامی رویدادهای زندگیش را، از خرد تا کلان توجیه می کنند هیچ یک از حالات بیرونی او از سر تصادف و شانس نیستند بلکه از خود اونی رو میگیرند، و نه از هیچ کس دیگر و از آنجایی که کل عالم را توقف و رکود نیست او این فرصت را دارد که به هسته اصلی آن راه یافته و آگاهانه در درونیترین امور زندگیش شریک شده و به کشف اصرار هستی نائل شود او در اینجا متوقف نمی شود بلکه پویش خویش را به طور لاینقطع ادامه می دهد این از طریق دانشی صورت می گیرد که با سفر روح کسب می شود با نگرش آگاهانه به جهان بیرون گذشته از اینکه بسیاری از سوالاتش پاسخ داده میشوند پیوندش با جازبه های بیرونی سست گردد فهم حقیقی از مطالعه درونی طبقات معنوی به دست می آید. این همان چیزی است که او نادانسته در پی آن است اما هیچگاه متوجه نمیشود تا اینکه لحظه موعود فرا می رسد و او این حقیقت ناب را درک می کند بشر از گهواره تا گور سرگردان است ولیکن تشخیص نمیدهد که مقصد حقیقی او بسیار بعیدتر از گور است و نمیداند که کشف خودش به عنوان روح او را مجددا به خواستگاه بهشتیش باز میگرداند قرن هاست که انسان وارث حدیث دو عالم است یکی جهان صورت دیگری عالم اصالت و یا معنا اما بدین علت که علم الاشیاء از ارتباط وجودی او با پدیدههای عالم ماده صحبت می وی آن را تنها جناح قابل اتقا برای نجاد بشر فرض کرده است اما چلا برای دایر نمودن و یا اصلاح زندگی خود از اک و با اک شروع می او هیچگاه گاه با کل در نمی زیرا در این صورت با جریان منفی حیات هم شده است اک سر به سوی آسمان ها دارد و سازنده است لیک کل مکول به زمین و تخریب است این اصل پایه و اساس دانش الهی البته از دریچه حواست است و همگان در اک آن را به عنوان حکمتی عملی می شناسند که در راستای شعاهای بهشتی سودماد به ظهور رسیده است کسی که برمبنای منطقه کل کار می زندگی را نمی بلکه خودش و جهان پیرامونش را فلج کرده و تخریب می نموید این مشخص می شود آنان که تکنیک های مدیتیشن را سرمش به خود قرار می‌دهند، از آزادی عمل در جهان های معنوی محروم هستند یک برخلاف ادیان که نظام های اجتماعی را تشکل می‌بخشند، جز الاین که این نظام های جمعی است زیرا که آن زندگی است و انسان به خاطر آن زنده است و عمل میکند و هرگز هم نقشی در تشکیل یا قالب ریختن آن نداشته است عکس، یک از طریق خیش درونی این شکل و قالب را برای نوع بشر تدارک دیده است به همین خاطر تکنیک های مدیتیشن به کار انسان نمی آیند زیرا در آنها فرد میکوشد تا از زندگی مادی بیشترین بهره را حاصل کند حالانکه که تمرینات معنوی اک این امکان را فراهم میآورند که جریان حیات به هیچ مانعی به درون او جاری شود کسی که اک را بیش از خودش دوست بدارد خوراک روح را یافته است یعنی هر آن کس که عاشق اک باشد و تمامی اعمال خود را به نام آن انجام دهد از صبر و شکیبایی لازم جهت ورود به قلم را به زرین خدایی برخوردار خواهد شد اگر از دست هم نوع خود رنج میکشید کشید معیوس نشوید زیرا با تمرکز توجه بر ماهانتا استاد حق در قید حیات من همیشه با او هستم چلا پیوسته به دست دیگران مکدر می اما نبایستی اجازه دهد که این برخوردها باعث افسردگی او شوند چرا که او سالک زیافت بهشتی است و همین میتواند به او سرور و شادمانی ببخشد بخشد هم که راه سعب و دشوار و آکنده از موج بلا باشد هرگز تسلیم کلنیرنجان قدرت منفی نشدید ماهانتا، استاد حق در قید حیات همه چلاها را زیر پروبال خود گرفته و دور از دامها و آشوبهای پنهان زندگی او را هدایت می کند. هیچ چلایی در اک بیحفاظت و راهنمایی استاد حق در قید حیات نمی مانند. او با هر دستش هزاران هزار تن را حفاظت می چلایی که طالب اکشار است میباید، که شیفته و شیدای طریقت باشد بایستی قلبن به این نکته ایمان داشته باشد که با شیفتگی و بیسوالی میتواند به اهلیت اک خدمت کند او بایستی با تمامی امکاناتی که در اختیار دارد انرژی های ناشناخته ای که او را در جهانهای پایین و کرده اند کشف نماید این روحیه مطلوبی را رو در او تثبیت می کند به طوری که با ورود به اکشار در نهایت پیروز میدان می شود چلاهای پس از ورود به طریقت اک بایستی بدانند همه اعمالی که از روی عمد بر علیه ماهانتا استاد حق در قید حیات انجام می شود توسط اک به سوی فائلش باز میگردند، و بنابراین اکثریت چلاها بایستی بدانند که یک راهی دشوار است متافیزیک طریقت نازله و خلعت رنج است و چلا نبایستی به آن و یا پدیده هایش تندهد ادیان اصولی نیز طریقت بلا هستند مظاهب را یک نقطه شروع و یک خط پایان است حتی مذاهب مدرن امروزی نیز خواهی نخواهی یک نقطه پایان دارند اما اک به کلی متفاوت است هیچکس نمیتواند یک مبدع حدوث را به توسط یک بنیانگدار برای آن مشخص کند زیرا اکی در شبکه ماده، انرژی، زمان و مکان نمیگنجد. آن خالق این عناصر است آن فقط هست و هیچ بیان دیگری نیز توسط انسان یا حتی روح نمیتواند در وسط آن عرض شود همه ی انسان ها، مخلوقات و به طور کلی تمامیت حیات در عک قیمند از آنجایی که بشر در بند حواس انسانی یعنی کالبد و ذهن زندگی می کند بایستی در در کمندی است باراورتا قامت بقای خیش را در کل حدی راست نگاه دارد اگر چون این تکیه را نیابد همچون شهاب سنگی در آسمان سرگردان شده و چه بسا تهدید کننده بقای هم شود او باید اکراد زندگی بداند آن سیاله و جوهره یاروح القدس است که از قلب خدا به تمامی کیهان ساری و جاری میگردد. آن در کل عوالم سوگماد نیروی خلاقه تغذیه کننده و انرژی نگاه تمامی چیزهاست. آن از جان ایشین و جمادات گرفته تا حیوان و انسان را دوام میبخشد آن واقعیت اصیل است پیوند نامرئی اتم‌هایی است که انسان برای بقاع کالبد گوشت و خون استنشاق کند و بدین وسیله می‌اندیشد آن اکسیری است که حیات از آن نقش شده و قوامش تضمین می‌گردد آن نمیتواند غیر از این باشد وقتی از دیدگاه روح که به آن قوای باطنی یا آتما نیز میگویند بدان نظر افکند شود در سادگی پرعظمت است و به صورت براغ فروزان نوری خیره کننده جولان می دهد که قوای بینایی انسان را می و از نهایت تا نهایت گسترده است این را نه آغازی است و نه پایانی گاهی اوقات به شکل دریایی دریای پروسعت و آرام در آگاهی فرد رخ می نماید و نوری هزاران مرتبه افزونتر از خورشید را انعکاس می دهد این آگاهی ماهانتا استاد حق در قید حیات است. آیا ذهن صورت پرست می این را درک کند؟ وقتی که اکیست عنوان میکنند که اک زندگی است و بنابراین نمیتوان مقتصاتی تاریخی مثل قبل از میلاد یا پس از میلاد را برای آن در نظر گرفت مگر از حاب ظاهر آگاهی انسانی میتوانند آن را درک نمایند. این دیدگاه باعث گسترش ذهن میشود اما از طرفی همان را گیج و متحیر میسود لیکن ابدا دچار بحث و تهیّر نمیگردد زیرا به تدریج درک میکند که اک بالاتر از هر آن چیزی است که تاکنون به هستی درآمده است و کیمیای معنوی تمامی جهان‌های ماده است. تنها عنصری که آگاهی انسانی میتواند کمر ذهن را بر آن محکم نماید و از حیرت و سرگردانی در خط زندگی بگریزد و میارهای غیر حقیقی زمان را در عدم اندازد مهانتا استاد حق در قید حیات است او همان ابرمرد شناخته شده ی ازوار باستانی است که زندگی بعد از زندگی در کنار تمامی نسلها حی و حاضر بوده تا به روح فرصت یافتن استاد را بدهد او خدا مردی است که روح به مدد آن راکب بر موج برگشتی به سوی خدا باز میکرد. از این رو هر چلایی میتواند صادقانه به خودش بگوید زندگیش به معنی حقیقی با اولین ملاقات او با استاد حق در قید حیات آغاز گشته است این دیدار خصوصی هم در طبقات درون و وضعیت رؤیا محتمل است و هم در گرد همایی هایی که استاد یا از سر تصادف یا به عمد، چشمان خیش را به طرز عجیبی به چلا خیره میسازد. این لحظه ای تاریخی در زندگی چلا می باشد. این مبدع تقویم تاریخ زندگی چلاست و می تواند وقایه قبلی را با مبنای تحت عنوان قبل از استاد حق مرور کند و رویدادهای بعدی زندگی را با مبنای بعد از مرگ بسنجد که به معنای مرگ آگاهی قدیم است آگاهی قدیم همان جهل و قفلت از مبدع الهی است و شامل زمانهای دوری قبل از این زندگی است که چلا با ماهانتا برخورد کرده کلامش را شنیده و مورد بررسی قرار داده اما او را جدی نگرفته است بنابراین حقیقت دستاورد سفر در طریق اکست نقمات مقدس موسیقی خدا همباره در اطراف انسان تنینانداز است اما او در چنان طبیعت گنگی قرار دارد که آن را نمی شنود. فقط با ورود به خلوت و سکوت تمرینات معنوی اک و بستن گوشهایش بر جهان توهمات می تواند این ملودی آسمانی را شنود نماید و الا معلول اوهام ذهنی خیش گشته و متحمل تلخ خامی‌های بیشتری میگردد کشف روح اولین محصول خلوتنشینی درونی است که به آن سیر درون میگویند انسان به جهان های نامرئی راه پیدا می ولی بلی چنانچه جهت خود را از روی نور استاد حق در قید حیات تعیین نکند و دلتنگیهای خویش خیش خواهد گریست و هیچگاه بر این کیهان درونی زفر نمییابد جمله کسانی که در طرق الهی گام می نیازمند یک راهنما یا نشانه می باشند اندکند کسانی که بی سفر می کنند. دنیای بیرون با چشمنداز زیبای رمانتیک خود مهم می اما چلا سریعا شعف مکاشفه‌های درونی را تجربه می کند. حالا دیگر کیهان بیرونی ای خارج از او نیست و معمایش حل شده است او دیگر آن را از بیرون نمی بلکه از درون مورد مداغه قرار می‌دهد. آن برای همگان اسرار خود را ایان می سازد و این ایان کشف شده برای جوینده روشندینی و خودباوری را به ارمغان می آبرد. پس از مدتهای مدیدی که بار در این جهان زیسته است حالا به انزوا و خلوت درونی پناه میآورد و جهانی تازه را ادراک می کند. که به او خوش آمد و قدم به قدم دانشی بی‌واسطه و بینشی بی را در طبقات عالی دریافت می کند ابزار حقیقت خشونت و تندی نیست آن فقط نیازمند یک احترام درونی و گوشی شنوا برای نیوشیدن موسیقی خدایی است حقیقت خود را تنها بر کسانی می نماید که آشغانه جویای آن باشند روشنبینی درون آتش مقدسی است که برای نیل و مرغوب الهی با عشقی بی متحد می شود این شراره درونی آن عشق و دانش همراه با آن پس از اینکه تولد یافت، اوج گرفته و تا نهایتش رشد کند به واسطه یک مستی فرازمینی و غیر شخصی، جام وجود انسان لبریز از اشتیاقی جان فضا برای سوق می شود این حال غیر شخصی اشراق است که در آن افکار به دو شق دنیای پندارهای درون و جهان بیرون نمی شود بلکه جهان بیرون به واسطه یک پارچگی آگاهی فردی محو می شود. انسان نمی تواند امید به تصاحب ثروتی عظیم تر از این موهبت درونی در سر داشته باشد او تازه در درون خودش تولد یافته است او بایستی از این گنجینه استفاده کرده و از آن قفلت نور زد. لیکن آنها به قی ساده و بیالایش هستند که او ارزش لازم را به آنها نمیدهد و بنابراین از پی مطاعی زرق و برقدار روان می گردد که حتی در صورت تصااحب نیز او را ترک میکن. زیرا انسان آنقدر ضعیف است که جهان در مواقعی ناگزیر است او را پس بزند تا او تمام امید خود را بر این جهان نبندد و بیشتر به خودش بپردازد قلمرو بهشتی همیشه در اینجا و در کنار انسان است در کنج دلهای تمامی خداجویان مقصود اصلی تجربه خداشناسی است پس سعادت است که راه بهشت را بیابیم تا اینکه دنبال روی شخص دیگری در زمین باشیم انسان بدین علت دچار ناامیدی و به طور کلی کیفیت منفی میگردد که خودش چون منتظراتی از زندگی دارد ساده‌ترین راه برای شکستن این حسارهای نیروی کلب اعتماد به مخانتها استاد حق در قید حیات است اک، روح جوهره الهی عشق منتها و حیات جاودان و یگان نیروی جهانهای خداست بنابراین کل کامل است و همه معناست زیرا که سوگمات چنین اراده کرده است آن علا دوام به تمامی عالم خلقت با شعف و خیلی بیفایان برکت می دهد در حریم خدا آدمی هرگز در معرض تقدیر شوم اشتباه، سوء تفاهمات، بلحوثی ها و عجز و محرومیت ناشی از حواست مادی قرار نمی گیرد. جنبه منفی زندگی در حقیقت مظاهر قدرت کل هستند نیرویی که ادعا می توان برابرد ساختن همه نیت و انتظارات را داراست اما این دائمی نیست و دست آخر با دریغ نمودن نتایج دلخواه فرد کاخ آرزوهایش را ویران می کند. اما نیروهای کل یا خیش فانی نه قدرت انجام چیزی را دارند و نه میتوانند علت قرار گیرند قادر مطلق و علت العلم عشق است آن ادراک معنوی که توسط استاد حق در غیر حیات بشارت داده میشود شود انتظارات و اعمال بالحقه بوده و به دور از ناامیدی و شکست است اگر انسان خرد می‌داشت هرگز اختیار خیش را به امیال انسانی نمیسپرد. اما با اعتماد به ماهانتا استاد حق در قید حیات است که خود را به عنوان مجرعی برای خدمت به خدا و توزیع برکت معرفی می‌کند ماهانتا قبل از آنکه فرد از او تقاضا کند از تمامی آنچه که او نیاز دارد مطلع است صفات منفی انسان مثل ناامیدی در مواردی به نفع اوست زیرا انسان را وادار می‌سازد که افکارش را مرور کرده و با دیدگاهی شفاف‌تر دریابد که فقط خدا قابل اعتماد است با جایگزین کردن کارکردهای آن با انتظارات نابجای انسانی شخص دیگر نیازی به تجربیات تلخ زندگی توهمی و مادی ندارد تجاربی مثل ناامیدی، رنج و ناکامی دائم او همچون کودکی خسته به آغوش عشق الهی باز میگردد. مادامی که چلا آغاز به اعتماد به ماهانتا استاد حق در غیر حیات میکند و به این تشخیص نائل میآید که جنبه منفی حیات مقتضای وضعیت آگاهی انسانی و کالبد خاکی است از نظر از موقعیت بیرونی خود به بلوغ معنوی می رفت بنابراین برای همگان ایک بهترین است و هرگونه احساس عجز دلسردی و شکست را می توان با این کشف شهودی جایگزین نمود که عشق الهی همه چیز است این جهان گذرا بوده و پریده هایش آفتاب لبه بام هستند خردمند کسیست که ماهیت توهمی و زودگذر امور دنیوی را شناخته و از ذهن و کالبدش جهت خدمت به سوگماد بهره گیرد با این عمل او از تمامی چیزهایی که سوگماد از سر فیض خود در کالبدش تعبیه نموده بهرهمند می شود او آن گوهر یک دانه جوهر یک کل آتما یا روح را به معمن حقیقیش می رساند. روح را توزا سوترا یا جیباتما نیز می‌گویند. آن از طبقات والای هستی در کالبر حلول نموده است از ستنام طبقه روح و از قلب سوگمان آن توسط سه از گونا و پنج انصر تطوا و ده ساختار و ذهن در اینجا به دام افتاده است و وحایی از قیودات و اضافات کالبدی برایش مشکل است صقوط این قیودات و اضافات کالبدی رستگاری نام دارد قیدوبندت های درونی به واسطه لذتهای بیرونی مثل خانواده و سایر ارتباطات شکل میگیرند جیبات ما روح آنقدر تحت انقباض این محدودیت که منزل حقیقی خیش را از یاد برده است او به حدی از خانه به دور افتاده که بدون انتفات ماهانتا استاد حق در غیب حیات یا وای گروه نمیتواند بهدانجا دانجار رجعت کند هیچ فیضی بالاتر از این نیست که روح به خواستگاه الهی خود بازگردد. تا چون این نشود، روح از درد و لذت این دنیا فارغ نمی‌گردد. منظور و مقصود اکن کار همواره بر این قرار گرفته است که روح را در مسیر صحیح به سوی مبدأ الوهیت بازگرداند. طالب موفق کسی است که در عمل و با استفاده از تمرینات معنوی اکن و به یاری و استاد حق در قید حیات خیش را در قالب روح به معوای حقیقیش برساند این روح را از تمامی کلافهای علت و معلول قلو زنجیرهای بیرونی و جرونی نجات میبخشد. ذهن را از جهانهای فیزیکی منقطع میسازد و به روح این آزادی را میدهد که در هر جهتی که میل دارد حرکت کند او مختار است رو به سوی بالا و به جانب جهانهای حقیقی و یا رو به سوی پایین و به جانب جهانهای روانی ترقی یا تنزل نماید. دهروان کامل یا اشراق حقیقی سودماد کسانی هستند که به مرحله واپسین سفر خود یعنی به سرچشمه بهشتی کل می‌رسند. اوعلان عافیت طلب فقط حرف ماهان تا گروه حقیقی را می‌زنند و تنها به خواندن تعالیمش اکتفا می و هرگز در عمل وقتی به آنها نمیگذارند. اگر حقیقت الهی وجود نداشته باشد چیزی هم وجود ندارد تا حقانیت آن را به عنوان پدیدهای زنده مدلل سازد با هجرت از رسوم و آداب فکری حقیقت در دل خانه می جایی که مبدع تمامی افکار و نیت هاست. این توسط متفکرین و مذهبیون قلب یا دل نامیده شده است شخص بایستی آن را قلب تپنده همهی اشیاء و پدیده ها بداند آنان که خوفی عظیم از مرگ فیزیکی دارند بر آستان استاد حق در غیر حیات پناهنده می شوند استی که نه مرگی دارد و نه تولدی. همواره مرگ مقرون بر فنای خود و تعلقاتشان است. جز عایده این احساس ترس در ایشان می‌گردد. در تفکراتشان خود را قربانیان زندگی می‌دانند ولی هیچگاه به مخیلهشان هم خطور نمی‌کند که می‌توانند رو این شوند. کسانی که در دوره های مختلف تاریخی با ریسمان معنوی اک مبادرت به سفر به قلب سوگمات کرده اند همه نتوانستند به مرتبه نهایی برسند برخی در اولین طبقه طبقه فیزیکی متوقف شدند و طایرین در طبقه احسیری زندانی شدند اده قلیلی به طبقه علی و بعضا به طبقه چهارم رسیدند گاه کسانی که به نماینده زمان وفادار بوده و در ایمان خود به ماهانتا استاد حق در قید حیات پایمردی نمودند و آنان که روند وصل را در پیش گرفتند هرگز با کالبد انسانی به این جهان باز نخواهند گشت مگر خودشان این نوع همکاری با واسو مود را انتخاب کنند شاگردماندگانی که به بالاترین مرتبت یعنی به قلب خدا وارد می شوند واقعا اندکند اینجا ایستگاه نخستین عظیمت روح به سوی قطب است. در طول این سیر نزولی روح از میان لایه‌های واسط یعنی سطلک و جهان روانی گذر می تا به جهان ماده برسد کسانی که هنوز سیر و سلوک خود را در جهان پایین به اتمام ره تصور می که مبدع روح جهانهای روانی است و آن از آنجا حبود کرده است به خاطر عدم آموزش زیر دست ماهانتا استاد حق در قید حیات تعجبی هم ندارد که ایشان بذر حیات را در طبقات تحتانی بجویند همچنین ایشان کل رنجان پروردار جهانهای پایین را خالق تمامیت آفرینش می دانند. و به مدیجان خود پرستش خدایان طبقات را به عنوان پروردگار حقیقی تلقین مینمایند اما بایستی بدانند که نام حقیقی خدای قادر سوگماد است و اقلیم او از همه بالاتر است اقلیم سوگماد را آکاها غیر قابل بیان و یا اقیانوس عشق و رحمت مینامند. این قلم را به بیپایان حقیقی و جاودانه است آفرینش و ظهور سایر مناطق هستی از اینجاست اینجا لامکان و فراسوی همه چیز است و نمیتوان آن را یک منطقه یا طبقه نامید قدیسین این جهان هرگز به آکاها نرسیده و درجه و منزلتی پایین از اساتید اک دارند. آنان در مسیر صعودی خیش در طبقات مختلف توقف نموده و به قدر جام وجود و بر حسب دریافت‌های معنوی خیش مذاهب مختلف را بنیان نهادند هر منطقه‌ای که توسط ایشان فهم میگردد در نظرشان مرحله قایی است و حاکم آن منطقه را خداوند متعال دیدند و پرستش آن را آغاز کردند این خطا از اینجا ناشی می که تمامی مناطق گوناگون توسط سودماد کبیر آفریده شدهاند و در اصل هر یک انعکاسی از اقیانوس عشق و رحمت است به همین خاطر نوعی شباهت میان مناطق فوقانی و تحتانی وجود دارد نقطه تمایز آنها در عیار جاودانگی است هر طبقه خواست ممیزه خود را دارد که توسط درجات مختلف هوشیاری و خلوص به شکلی ساختاری تجلی یافته است فقط کسی که منتحا طبقات خدایی را در آسمان معرفت دیده است این اختلاف را احساس می کند شعاع نورانیت خدایان هر طبقه به نظر نامحدود و بی نهایت لطیف می آید. و آن مقام حضرت حق قلم داد می شود مستی و شوریدگی لحظه وسال باعث می‌گردد که مرید در چیزی مستغرق شود که آن را حالی از اشتیاق و مستی الهی به حساب میآورد که بنان بیان از رسم حقیقت آن قاصر است روح بایستی دانش خاص هر طبقه ای را که در آن رحل اقامت می‌افکند فراگیرد در هر مرتبه روح تصور میکند که دیگر بر تمامی طبقات پایین تر تسلط و اشراف دارد مثلا در بعد ورود به اولین یا دومین طبقه خدایی آن را در جایگاه و حاکم مطلقه و علت جهان یا جهان‌های زیرین قرار می‌دهد و از آنجایی که دانشی نسبت به طبقات بالاتر ندارد خدای آن طبقه را به مریدانش پروردگار متعال معرفی مینماید فقط مهانتا استاد حق در قید حیات وایگرو جهانهای بالاتر را میشناسند. اگر هر یک از این معلمین توسط یکی از اساتید یک آموزش دیده و هدایت شوند، سایر افقهای موبین بر آنها مکشوف میشود و آنان را مبدل به مجرایی برای استاد حق در قید حیات میسازد. هر کسی که در خط تکامل بهشتیش طبقات اول، دوم و یا سوم را قطع کند منزلتی بینابینی میابد با رسیدن به اقیانوس عشق و رحمت است که رهرو تمامی قدرت حاکمه بر مراتب تحتانی را در دست خود میگیرد و به موجب این دریافت لغت استادی در اک روح کامل یا وایگرو را کسب میکند او استاد حق در قید حیات است. روح ابتدا از منطقه ساچخاند نزول شعن می کند تمامی نواهی تحت ساچخاند مراتب نزول روح می باشند نور سوگماد با تجلی صفاتی و ذاتی آن بر روح تابیدن می و به دین ترتیب به خالبتهای او یعنی فیزیکی اسیدی اللی و ذهنی که آن میخواهد به عنوان مجرائی پاک برای نور و صوت خودش استفاده کند سرایت میکند به نیروی مراقبه و به اعتبار سیر سعودی در سفر روح نیروی اشتیاق و شیفتگی کاهش میابد سقوط این عادت ذهنی ممکن است فرد را به این طرز تلقید سوق دهد که نیست شده است اما تا روح به سطلوک باز نگردد هرگز شراضه اشتیاقش فروزان نمیگردد. گردد این تعجبی هم ندارد که مریدی که فقط به نواهی اول و دوم رسیده است نتواند در مقابل تأثیرات نیروی کل، مایا و تحریکات قوی لذات حسی مقاومت کند. این امکان وجود دارد که شخص دوچار تزرزل و لغزش شود، ولی میتواند با افتصاف به تمرینات معنوی اک و ماهانتا استاد حق در غیل حیات سریعا قدرت خود را بازیافته و ثبات از دست رفتش را نوآفرینی می کند پس بر چلای اک خوشتران است که خود را به طبقات بالاتر برساند. به عبادی که در برابر چونین بس ها و اقواه مسون متون است حراسوی کشش ها و تأثیرات حسی آنجا که قادر است از برکت زندگی در حضور ساتنام پروردگار مرتبه پنجم لذت ببرد از این پس او در برابر تمامی جاذبه های منفی رو تن می شود و دیگر کششی به قطب تحتانی ندارد زیرا دیگر بیرون از حوزه اقتدار مایا به سر میبرد او به لقب محدیث مفتخر شده است. همیت از جمال و جبروت این طبقه است که بسیاری از ریشیها، مونیها، اورفا و پیامبران را به دام مایا می اندازد و نتیجاتاً ایشان را از اوصاف ستوده دور می سازد. این فرزانگان از چونین باختهای عمیق معنوی بیخبرند آنها نمیدانند که با شناسایی تدابیری که مایا برای فریب ایشان مورد استفاده قرار می دهد حرکت به سوی بی و به جانب جهانهای بالاتر نیز میسر است هرچند که آنها به درجاتی عالی در قوس ترقی خود دست یافتند لیکن به مناطقی که خارج از تیر مایا می باشد داخل نگشتند آن منطقه امن جهان روح است که مرتبه پنجم و بالاتر از آن را شامل می شود اولین و بالاترین منطقه که طاق دیبین و پیشین طبقات است و نام و مکانش مقرون به کلام و بیان ذهنی نمیگردد گردد میباشد می باشد. جهان بینام یا آکاها پایان تمام جهانها و یا همان اقیانوس عشق و رحمت. آن لایه بر تمامی جهانهاست عشق و قدرت این جهان به نیروی علت اولیه در همه مکانها می تپد در آغاز جریان الهی از این جهان می و در قالب کلمه و به عبارت بهتر اک به تمامی جهانها سمت و سو میگیرد اینجا منطقه اساتید والا مقام اک است تنها اساتید اک و پیروانشان توان دست رسی به این طبقه را داشته و دارند آخرین جهان کهانهای حقیقی معنوی ساتنام جهان پنجم یا طبقه روح خالص است آن در کمال صافی و نورانیت و خلوص است منطقی روح خالص یا اک و آگاهی است اینجا آغاز و پایان تمامی خلقت در جهانهای روانی و مادی می باشند حاکم این طبقه اولین تجلی سودماد است کلمه مقدس نخستین یا اد اک در اینجا نباخته شده و به سوی جهانهای پایین حرکت می کند آن اثر اصلی زندگی را تمامی اشیاء و پدیده ها و ماهیتها ارزانی میدارد آن در معركهٔ تغییر و تخریب قرار نمیگیرد آن همان است که هست اساتید عک همگی تجسمی از ساتنام پروردگار این طبقه هستند ماهانتا استاد حق در قید حیات تجلی سوگماد است او تنها نماینده ی حقیقت الهی است تا افق اعلای بهشتی از بزم حضور مهانتا استاد حق در غیر حیات منور می شوند او توسط سوگماند در تمامی طبقات در کالودی مناسب همان طبقه تاکن شده است آنان شراب خوشگوار جاودانگی را نوشیدند مرگ کارما و تمامی آلام و دردها در این جهان قایبند بعد از خلاصی از قید پنج تاروها یا ماده و ست گونا یا اصل و کالبدهای های فانی یعنی اسیری الی و ذهنی است که روح به طبقه پنجم مترتب میگردد. جایی که در خود پرستش و ذکر و سنای مقام حق تعالی است سالکی که با هدف وسال سوگماد وارد نواهی ساتلوک می گردد به آنچه که انجام می ایمان راسخ دارد و همین او را به قلب سوگمان میرساند. در لایه زیرین ساتلوک منطقه داسوان دوار است وقتی روح از اقیانوس اشق و رحمت به سوی قطب تحتانی حرکت می قبل از ورود به جهانهای روانی در اینجا می‌ماند و تحت تعالیم ویجهی قرار می‌گیرد که در آنها از تدابیر و تله‌های های کلنی که معکدن میخوشد تا آن را هرچه بیشتر در جهانهای پایین نگه دارد می‌شود. میشود پایین از اینجا جهان ذهنی یا منطقه پاربره است. جایی که ذهن کیهانی و تجلیاتش خود را در حیعت کلنیرنجان نمایان میسازد قدرت ذهن کیهانی انرژی متکثر و خلاقه‌ای است که مذاهب آن را پدر و یا خدای دو عالم می‌نامند. البته ذهن کیهانی ماهیت دیگری نیز دارد که به آن پراکریتی گفته می‌شود. تثلیث انرژی‌ها و ماهیت‌ها که در مذاهب غربی به نام پدر، پسر و روح القدس و در مکاتب شرق تحت عنوان براهما، ویشنو و شیوا، تثلیث هندو نامگذاری شده، از اینجا برخاستند اینها پسران کل نیرنجان سلطان جهانهای پایین هستند و چه مؤنث کل نیرنجان شاکتی میباشد که نماینده جریان خلاقه صغیر است از حاصل اتحاد این دو جریان عظیم که در صدر جهان ذهنی صورت میگیرد سه جریان فرعی به جهانهای پایین وارد می میشوند که حامل انرژی خلقت در جهانهای سهتانی هستند با پدری برهم و مادری شکتی انواج آفری و خدایان و حکام طبقات پایین را به وجود آوردند آنها عمدتا تحت نظارت مادر خود شکتی قرار دارند آنها نمایندگان قدرتهای خلاغه کل هستند و این قدرتها را از بالاترین مرتبه حمل میکنند این نیروهای خلاغه منفی شخصیت گرفته و به عبارتی شکل می میابند و وظایفی انفرادی را می شوند. این قضایستگانه از زمانهای باستان تحت عنوان تسلیس خدایان هندو پذیرفته افت شدند این خدایان چه در غرب و چه در مشرق زمین به قلم را به سایر عدیان نیز تجاوز کردند و این اعتقاد را بارور ساختند که آن مذهب خاص منبع حقیقت اصیلی است که میتواند آن حقیقت را در میان مریدانش جاری سازد اما این نیروهای منفی خدمتگزاران انسان هستند ولی میلیون ها تن آنها را علی زیردست بودنشان پرستش می کنند هر کدام از آنها وظیفه معینی در راستای سامان بخشیدن به امور دنیوی دارا باشند از آفرینش کالبد گرفته تا حفظ و دوام این کالبدها آنها فقط کارگزاران سوگماد هستند نه خدایان در خور پرستش آنان خادمین سلسله مراتب با عظمت معنری هستند ولی هر یک دارای نیروهایی ویژه و خداداد هستند در حوزه اختیارات خود قدرت مطلق به حساب می آیند. همه آنها می تحت لوای قوانین و احکام دقیقی که برای حکومتشان وضع شده است حرکت و عمل نمایند اینشان قوانین طبیعت هستند که تصدیف آنها صرف نظر از نوع مذهب براهما، ویشنو و شیوا باشد که بایستی آنها را خدمتگذاران کلنیرنجان قدرت منفی به حساب آورد پایین از این قوای سگانه یک جریان انرژی و خدای دیگری نیز هست که بر کار کیهان فیزیکی نظارت می کند نام هندوی او گانش است. اما مذاهب عناوین دیگری بر آن قائلند. او در پای نردبان جریانات سگانه ایستاده و مشغلهاش خدمت به نوع بشر و کمک به هدایت و اداره امور دنیوی است. بنابراین این انسان خدایان غلطی را می‌پرستند. و با اینکه مذاهب منکر آن میشوند، ولیکن همه آنها دارای سیستم چند خدایی می باشند. متافیزیک، مکاتب اسرار و فرقه های جادوگری همگی با خدایان کهتر سلسله مراتب معنوی درگیرند. این شامل فرشتگان و ارواح انصری نیز می شوند. زیرا اینها هم در مراتب نازله هستی قرار دارند. در نواهی مجاور کلی زمین زندگی می کنند این خیلی عظیم وجودهایی هستند که تحت عنوان دیوها دوازها بودها و پرتها و نامهای بسیار دیگری شناخته اند. آنها وجودهایی هستند که تا اندازه ای بالاتر از مرتبه انسان معمولی قرار می گیرند و می توانند به طرق مختلفی به انسان خدمت کنند آنان قدرت زیادی دارند و شدیداً مایلند به افرادی که در هماهنگی با آنها هستند کمک نمایند. انسان موجودی بینابینی میباشد. او مابین سلسله مراتب والای معنوی و پایین‌ترین وجودهای یعنی جنهای خاک، اشباه بیشزار و مزارع سیرنهای باد و پریان دریایی جای دارد. اما اگر در هماهنگی با این قدرت‌های مافوق عمل کند مطمئنن از مساعدت آنها بهرهمند شده و معالن به دولت دیدار مهانتا استاد حق در قید حیات نائم می آید. و از آن پس راه بازگشت به سرمنزل حقیقی خود در جهانهای معنوی را در پیش میگیرد. آموزشهای آموزش های اک قدیمند بنابراین هم کهانترین و هم نوینترین می باشند آن قدیمیترین و خالصترین کلام خدا از زمان طلوعش می باشد هیچ کس نمی تواند زمان این طلوع را معین کند. زیرا ابدیت را آغاز و انجامی نیست از تا اک این آموزش های معنوی را از مدت های مدیدی در گذشته های دور به رهنبردان آموزش دادند آنقدر قدیم که مورخین بشر هیچگاه نمی توانند آن را در این سیاره ردیابی کنند آن به زمان قبل از وداهای هند باز می گذد. وداها در زمانی که آموزشهای خالص اساتید اک دوچار تیرگی و تحریف شد قدم بر این سیاره گذاشتند اک در اعثاری که و حتی قبل از آنکه که چین شروع به تفکر در باب خداوند ناشناخته و پیچیده خود نمایند به مستعیلین تعلیم داده میشد. آموزش‌های قدیمی تر از زمانی است که طوفان‌های بین ای شکل قاره‌ها را تغییر داد و سلسله جبال هیمالیا را در حیبت امروزیش به وجود آورد. قدمت آن به ادوار پیشتر از امپراتوری ساتیا یوگا در عصر طلایی که تمدن خود را در فلات وسیعی که امروزه تبت نامیده می‌شود و همچنین در صحرای گوبی برانهاد باز میگردد و قطعا مقدم بر پیدایش زبان سانسکریت در مرکز امپراتوری و تمدن ما قبل تاریخ یعنی سلاتینه اویگور میباشد. باشد وایرگی نظام باستانی پیران معنوی اک که از کران تا کران از اقیانوس عشق و رحمت تا تحتانی ترین قطب کیهان را نر قلم را به خود دارد شاهد انحطاف و زوال تمامی تمدنهای شناخته شده بشری بوده است بنابراین ماهانتا استاد حق در قید حیات برخلاف آنچه که بسیاری به آن اعتقاد دارند زاییده تمدن مدرن و امروزی بشر نمی‌باشد. ماهانتا استاد حق در غید حیات از میلیونها سال پیش در این سیاره حضور داشته است ملیون ها سال است که حکمت عملی اک به چلاهای برگزیده اعطا می‌گردد و طبق معمول در طی دوره‌های ماقبل تاریخ، زمانی که نژاد بشر در سیر قحقرایی به سمت خشونت و توحش در حرکت بوده، اساتید اک حقایق معنوی را به عنوان یگان مشعل نوربخش اوراق تراکنده‌ی جهان برای تمامی کسانی که چشمی برای دیدن داشتند روشن نگاه داشتند آموزش‌های های اکرار نبایستی با سیستم های مختلف فلسفی و مذهبی اشتباه نمود اک نه فلسفه است و نه مذهب بسیاری از مقاهب و فلسفه های جهان سیمایی مشابه اکنکار دارند اما علت آن است که خود ادیان و مکاتب فلسفی از اکنکار سرچش می گرفتند. آن فشمه جوشان حیات است همه چیز فرزندان اک می باشند. و به همین علت است که بسیاری از گمگشتگان وادی مذهب و فلسفه چیزی را در اکنکار می می‌یابند که به نظرشان مشابه مبانی مسلک خودشان است. این به خاطر آن است که مؤسسین آنها از اکنکار اقتباس کردند و تک تک و فلسفه‌ها از سرچشمه خدایی اکنکار جوشیدند نه راهی برای تجزیه و تحلیل اک وجود دارد و نه زبانی برای توصیف و بیانش آن فقط همان است که هست و تلاش برای اینکه آن را چیز دیگری بنامیم، موجبات سردرگمی و شکست خواهد شد اکنکار حقیقت است و دیر یا زود تمامی انسانها با شور و شوق به تمنای آن برمیخیزند برخی از ذهنهای پیشرفته مدعی دانش اکنكار هستند اما کسانی که الملسرار آن را کشف نمودند می‌دانند که دانش آن در اختیار جماعتی محدود است و قبل از اصر جدید ادهی اندکی از نعمت مکاشفات معنوی استادان اک به زبان بشری برخوردار می‌شدند. پیش از این آموزش های معنوی در پرده بودند و در زمره تعالیم اطراری طبقه بندی می و علم آن در دست عدد محدودی از واصلین بود و در خلال الهامات سری و کارکردهای سمبالیک به درشت می‌آمد و فقط به توسط کسانی که کلید داری این تعالیم و تحت تکفل مستقیم مهانتا استاد حق در قید حیات بودند قابل دریافت بود غیر از نفوذ به عمق آموزشها عاجز آجز بودند و تنها روح‌های معنوی پیشرفته توانایی درک استعارات کلامی را داشتند و بدون راهنمای کلیدی کشف این موضوع ممنوع محال بود تعقیب اک به صرف شوق و حیجانات بیرونی و به نیت کسب قدرت های روانی است که کیفرش پوچی و اختلال عصبی و حتی بدتر از این هاست. کس نباید وصل به اسرار اکرا با انگیزه های مادون خواستار باشد که مطمئنن حاصلش فاجعه ای از این خواهد بود. اما راهی مستقیم و غیر استدلالی نیز به سوی مبدع ازلی وجود دارد. و برای تمام کسانی که از بصیرت لازم برای قرار گرفتن در شریعت برخوردارند تکیگاهی هست و آن پذیرش ماهانتا استاد حق در قید حیات به عنوان حقیقت و طریقت است. این راه طریق اک است همین که فرد می پذیرد که این راه خداست کاملا تسلیم شده و از همه چیز در جهان مادی به نفع دریافت شعف و سربلندی و عشق در آغوش مهانتا استاد حق در غیر حیات صرف نظر می کنند چون این است آموزش های مقدس اکنکاش